بسم الله الرحمن الرحیم ادوات شرط ادوات شرط التي لا تجزم اون ادواتی که مجزوم نمیگردانند درس قبلی شما ادوات جازمه ای بود متا ایانه عینا ان ایو کیفا ما من ما هر کدومشون یک اعرابی داشتند مثلا متا و ایانه ظرف زرف واقع می شدند اگر فیل تام بود و خبر خبر واقع می شدند اگر فیل ناقص می بود اینه و اینه همین حکم رو داشتند اینه ظرف مکان واقع میشد اگر فیل تام بود و اگر فیل ناقص بود چی واقع می خبر ایو هم که مفغول مطلق واقع می کیفه چون به معنای حال هست حال واقع می شد. مگر اینکه فعل ناقص بود که اون موقع خبره فعل ناقص می شد. من و ما من تفصیل داشت مبتدا واقع می شد. مگر در یک حالت که فعل بعدی بر همون من یا ما واقع می شد. در این حالت مثلا اگر بگیم من رأیتَ من رأیتَ اینجا عمل رأیتَ در چه واقعه میشه بر منی که جث ما قبله لذا در این حالت مبتدا نمی بود ولی در حالات دیگر چی میشد ما رأیدیم ما ما قرأتا ما رأیتَ ما قرأتا که چه طور کنیم شود مفعولی به واقع بشه <متزن> بله. اما ما رایت ما قرات ما نصرت. خب ادوات شرطی که مجزوم نمی‌کنند سه تا هستن لو، لوما، لو، به لو لو بخاطرین سه گروه از این رو آورده است. لو لو احتمل مریض لسلم اگر مریض پرهیز می‌کرد سالم می‌موند. ببینید از معنی اینا اگر این کارو کرد، اون کار میشد لو تا ان العامل ما ندنا لو ان اخاك كريم لصاد میبینیم که این لو جازمه نیست شرطه به یک شرطی داره یک جوابی اگر این کارو بکنه اون کار میشه این شرطیه شد دیگه اگر بکنه موافق نشی اگر پرهیز کنی سالم میمونی شرطیه کنه ولی جازه نیست جازه نیست لولا نیلو لکان الاقلیم الجنوبي سحراء لولا الهواء ما عاش انسانون لولا قبیبو لساعت حال المريضي البته لولا رو قبلا خوندین که گفتیم خبرش وجوباً میشه چه هست؟ حس، در اصل ترکیب لولا نیلو اینجوری هست لولا حرف امتناه هست ان نیلو مبتدا خبر وجوباً هست یعنی اینجوریه هست، تقدیرش این هست. لولا نیلو موجودن, موجودن، اگر نیل موجود بود. لکان الاقلیم الجنوبي صحرا. اون اقلیم جنوبی یک صحرا می بود خب پس لکان لا این لام چون در جواب لولا هست لا لا لام گرفته جواب لولا دیگه دارین قالا میشه فعل ناقصه اقلیم اسمش و صفت اقلیم صحراء خبر کانه میشه این ترکیبه جمله بود بپیتونید اما قصه هفتم لو ما لولا لو ما يكك يك شكلا خاص متوجه هستید لولا فضل الله عليكم ورحمه له من الخاسرين خب لولا فضل الله عليكم لولا هم الحرف امتنائه فضل مقتضى هست خبر جت خبر هاسل فاسل بعد ذلك لولا خبر شميشه خبر هاسل بله وجوبه لي فضل الله الله مضاف إليه هذا عليكم جار و مجرور متعلق بفضل هاسل و رحمته كخبين معتوف هاسل فضل مستر هاسل بله فضل مستره فضل مستره فضل يفصلوا فضلان بله، بریم جلوتر. پس لو ما اتّعبو ما کانت الراحه لو ما حرف امتنا تعبو مبتدا خبر حس هست ما کانت فیلم آذی نپسیم من فيها یا نه مکانت راحتو راحت نمی بود راحتو هست بله خبر هست خبر در لولا و لولا هر بیش هست بله نه اون جا خبر هست و این کانر خبری کانر پس جا بشه اگر را راحتی این خبر راحتو بگیم پس اسمش می شود لا مزاد خودي هست. مقدر هست. لو ما العمل لم تكن للعلم فائدة تونا. إن خبر اللوم هس هست. لو ما ثواب العاملينه. فترت معنیش که میدونید در قرآن وارد شده دیگه لا یفترون نه اون فترت به معنی پارگیه موضوع درس امروز ادواتی که شرطیه هستند ولی مجزون نمیگردانند نه تو هنوز درس رو فیدا نکردی؟ ادوات شرطی که مجزوم نمی گردنند درس بحثیم گوزمون هست خب حالا ادوات دیگه هم موجود دارن ماند لما کلما اذا اما اولا رو در امسره ناورده ولی در شرح آورده و همچنین در قواعد آورده القواعد لو و لولا و لوما و لما و کلما و اذا و اما اینا اداتی هستن که شرطی هستن اما مجزوم نمی کنند جمیع ها تفید تفیدو شرط ولا تجزمو تمام اینها ها ادواتی هستن که ادوات, ادوات شرطی هستن اما مجزوم نمی گردانند سدو دو لو تفید لو الان داره لو رو توزم دی مگل لو تفیدو امتناع الجواب لامتناع شرط میگه لو چی مفهومی داره؟ میگه امتناع جواب خاطر امتناع شر حالا دقت کنید در لو لو احتمل مریضو لسلیمه اگر پرهیز میکرد مریض سالم میشد پرهیز که نکرده پس چه شده؟ مریزه. اگر پرهیز میکرد مریض چکار میشد؟ سالم میموند پس اگر اولی موجود نباشه دومی دو هم موجود نمیشه اگر اولی امتنا بشه دومی دو هم چی میشه موجود نباشه پیش نیاید حاصل نشود دومی دو هم حاصل نمیشه پس لو دارن لو رو توزنید میگه توفید و امتناع الجواب امتناع جواب رو میرساند لی امتناع شرک به خاطر امتناع چی؟ شرط شرط کدوم هست در این جمله لو احتمال شرط اولیه جوابش کدوم است؟ لفل ما هست جوابش پس امتناع شرط امتناع جواب به خاطر امتناع چه شرط ولولا ولو ما اما لولا ولو ما چه کار لولا و لوما ما امتناع اینا دلالت بر امتناع جواب میکنند لی وجودشان به خاطر بر برعکس اونا اونجا امتناع شع جواب به خاطر امتناعی شرط اگر ترهیز میکرد مریض سالم میماند این معنیش جمله منفیه یعنی آقا پرهیز نکرده پس شده؟ سالم نیست؟ پرهیز نکرده پس چیه؟ سالم نیست؟ بله حالا حالا اینجا دقت کنید لولا و لوما برعکس لولا و لوما تدلانی على امتناع جواب اینا بر امتناع جواب دلالت میکنن خاطر وجود شد لولا الهواء و ما عاش انسانون اگر هوا نمی بود اگر هوا نمی بود انسانی زنده نمی بود انسانی زندگی پس امطنع جواب به خاطر وجود شرط چون هوا هست پس مردم دارن چکار میکنند؟ زندگی میکنند لولا هوا اگر هوا نمیبود بود لولا هوا موجودان ما عاش انسانون انسانی زندگی چون هوا موجوده پس جواب هم چیه؟ بله میگه لولا و ما دلالت بر امتناع جواب می کنند چه؟ جواب به خاطر وجود چه؟ چون این هست پس اون bale اگر نمی بود هوا ما عاش انسان انسانی زندگی نمیکرد. که و لوما فرق, فرق با لوما و لوما و لوما فرقشون این هست که در اولی کنید اگر فلانی درس میخاند مردود نمیشد. اگر زید درس میخاند مردود نمیشد. خب چون درس نخونده پستش شده. مردود شد. مردود نمیشد. قبول میشد. یکی رفته نهش. اگر پلانی درس میخاند قبول میشد. اگر زید درس می چی نمیشد. قبول میشد. در اولی امتناع جواب به خاطر امتناع چه؟ امتناع اشار با هم دیگه ارجوت چه داره؟ وجود اشار به خاطر نه لا لوه بعد یعنی وجود اولی مثبت دیگه اگر میخوان دیگه اگر میخوان قبول میشد خب مشخص تنها لوه لولا یعنی این الان اگر هر جمله ای رو به شما بدن خود به خود ما خداگه رو درست می‌کنی لو با لولا لولا که منفی میکنه لولا اولی رو اثبات میکنه دومی رو چکار میکنه دومی رو رفت میکنه لولا لا, لا. نیلو اگر نیل نبود یعنی نیل ها اولی رو کنه اثبات میکنه حالت دوبو نفت میکنه اگر نیل نبی بود مردم مصر گشنه میشدند چون اولی وجود داره پس دومی چه شده ممتنع شده پس وجود شر امتنای درومی رو میکنه که جوابش هست و لما و کلما ذرفانی للماضی لما و کلما اسمان اعراب دارن خودشون خود لما و کلما چی دارن؟ اعراب دارن میگه لما و کلما ظرفانی للماضی اینا ظرف واقع میشن برای فعل چی؟ فعل ماضی منظوری است که بعد از اینا چه فعلی واقع میشه؟ بله لما نزل المطرو ربزرعو چی آورده؟ بحث کلما رأیتو فقیرا اطفتو علیه کلما دلالتو بر تکرار میکنه یعنی هرگاه خودش توضیح میده میگه لما و کلما ظرفانی للماضی ولا یلیهما الا الفعل الماضی بعد از اینا فقط چی فعلی میاد؟ بعد از اینا فقط فعل ماضی میآید. معنیشون هم به معنی گذشته میکنه ولی بعد از اینا چی فعلی فقط میاد؟ ماضي زين يات وإذا ظرفون للزمان المستقبل إذا ذكرت دلالته برأيهم دم يكون ولا يليها إلا الفعل وبعد إظهار إظهار شفقة شميت فعل ميات ظاهرا أم مقدرا شئ فعل ديدا شيء شئ فعل ديدا شيء يعني حرف ما ذي ميجاي إذا أومده وبعد اسم أومده بدون يمكن ما قبل شيء فعل هاس ولا فعل ديدا لم يش متعادسيد بعد ایده سما انفترات بعد از ایده چه اومده اسم اومده ولی ما قبلش فیلی هست مقدران یک چیز هست اون فل از همون انفترات هست که از روی انفتر تشخیصش می از روی کلمه بعدی چیش می تشخیصش می و اما و اما که آخرین حرفه شرط هست اما مجموعه نمیکنه اما هست میگه اما و تفصیله اما تفسیل رو میرساند و تقوم مقام عدات شرط و دهی این اما هم جای شرط و هم جای چی رو میگیده فیل شرط رو یعنی اما که اومد عدات شرط تو خود اما میگه در واقع عداط شرط نیست بلکه چی رو می گیده؟ عد جای عداط شرط و فعل فعل شرط رو میگیره که تقدیرش میشه این هست مهما یکن من شیئن مهما یکن در بحث آورده مهما یکن من شیئن این اما جای این رو می گره. اما جای چی رو می مهما یکن من شیئن که مهما همون عداط شرط هست یکن فعل شه. یکن چی شکر؟ فعل شه. بس أما تفيد التفصيل وتقوم مقام أداة الشرط وفايله معا هم جاي أداة شرط رميقية وهم جاي في الربا هم. وتلزم الفاء جوابها وإن در جوابش فلازميها معنى ده المصال مصايف مصر جميلة أما الإسكندرية فأو فروها أمرانا وأكثرها سكانا مصایف مصر مصره جمیلتون مصایف و مبتدا مرکوبا زمه مصره مضافون اله مجرور با فتحه غیر منصرفه جمیلتون خبر مرکوبا زمه اما چه اما نائب محما به زفی کن هست یعنی در واقع اما جانشین چه هست؟ محمایه کن من این هست من این پس اما که میگیریم حرف تفصیل هست جای چی رو گرفته هم عدات و هم فعل شرط رو هم عدات رو و هم چی رو بله هم شرط و هم فعلش اینا می رو میگن شرط همین حروب فعل که بعدش میاد بگن فعل شرط فعل بعدی میاد جمله بعدی میگن جواب شرط, شرط. بله پس اما میگوییم چی کلمه ایست؟ میگویم کلمه است که مقام عدات شرق و فیلش هست الاسکندریتو چه هست؟, هست. مبتدا هست چرا؟ چرا مبتدا هست؟ خب است آموزارو خوب هر چی باشه جز جمله تابلی هست چی سر تروران اما اسکندریتو اسکندریتو مبتدا هست یا اسم یکون هست یکونی که هسف هست اسم یک میباشد. می باشد اسم چی می باشد؟ میشه جواب شرق به خاطر این روش چی اومده؟ باله چی میشه؟ نه میگه گه بهترین شن اللحاز امرانی خوندیم نه بدل از چی؟ تمیز میشه چی میشه؟ همانطور که سکانن هم تمیز هست بیاید قواعد خوندیم بله قواعد رو خوندیم پس گفتیم که لو لولا لوما لما کلما اذا و اما اینا از عدوات شرط هستند ولی مجزوم نمی نمیكون. کنم لاماو کل لاماو ایداو هم مفصل توضیح داد.